زمان اتفاقات عجیب و غریب و موجودات جادویی که بعضیا خوب و بعضیایی بد بودند و همچنین این داستان درباره ملکه فرمانروا و دو شاهزاده است شهری رو تصور کنید پایتخت کشوری که سالها با همسایگانش در جنگ بود دشمن شهر رو محاصره کرده بود و فرمانروا و ملکه همراه با مردم از شهر دفاع می کردند. ملکه فرمانروا و ملکه هم دیگر رو خیلی دوست داشتند، اما همیشه هم همسلیقه نبودند. نبودند. بنابراین با اینکه دشمن شهر رو تهدید میکرد، ملکه حاضر نبود شهر رو ترک کنه. اما فرمانروا از او میخواست در دژ مخفی پناه بگیره. هیچ کس نمیدونست این دژ کجاست؟ حتی ملکه هم فقط یه بار به اونجا رفته بود. بنابراین این جای امنی بود. ملکه از فرمانروا خواهش کرد او رو به دژ نفرسته. ملکه میخواست در کنار فرمانروا بمیره اما از او جدا نشه. فرمانروا به حرف او گوش نکرد. از این رو به نگهباناش دستور داد ملکه را به دژ ببرند و تا پایان جنگ او را همونجا نگه دارند فرمانروا گفت، اگه بتونم حتما به دیدنت میام. خیلی امید نداشت که بتونه بار دیگه ملکه رو ببینه. اما امیدوار بود که با این حرف ملکه احساس آرامش بیشتری کنه. اون دش در جایی میان جنگل انبوه قرار داشت. ملکه در این دش نه دوستی داشت و نه کاری که انجام بده. آروم آروم گریه می کرد و می گفت فرمانروا میگه منو دوست داره اما منو به این مکان دلتنگ کننده فرستاده دارم از دلتنگی میمیرم ملکه عصبانی هم بود و این فکر که همسرش بدون او با خطرات جنگ رو به رو هست او رو غمگین میکرد دلش خیلی براش تنگ شده بود سرانجام دیگه نتونست تحمل کنه ملکه تصمیم گرفت به شهر برگرده باید راهی پیدا میکرد میدونست که نیروی پنهانی همیشه او رو کمک میکنه. این بار هم باور داشت که این نیرو او رو راهنمایی میکنه. به همین خاطر شروع به طرح نقشای فرار کرد. اول به نگهبانا گفت که میخواد به همراهشون به شکار بره. دستور داد: میخوام برام یه عرابه بسازید. به این ترتیب میتونم به دنبال سگهای شکاری باشم." ملکه طوری داد عرابه را بسازند که فقط یه نفر بتونه سوارش بشه بعد هم خودش اسب ها را انتخاب کرد اسب های تندرویی که بتونن دیگران رو پشت سر بگذارند بعد فرمان داد حالا دنبال شکار بریم ملکه به جای لباس شکار لباسی از جواهر گران قیمت پوشید و کلاهی با پرهای بلند رنگارنگ به سرش گذاشت چون میخواست پیش همسرش بره و دوستاش خیلی زیبا باشه ملکه به همه گفت که هرکس از یه جهت به دنبال شکار بره تا فرار نکنه سرانجام وقتی تنها شد به عصبها فشار آورد به نظر میرسید عصبها هم همین رو می‌خوان و تا میتونستن تنتر و تنتر میتاختند ملکه سعی کرد سرعت رو کم کنه اما زورش نمیرسید دردش چه تصور بیهوده ای داشت فکر میکرد میتونه اونا رو کنترل کنه. ملکه از نیروهای پنهانی یعنی فرشته ها و موجودات جنگل خواست تا بهش کمک کنند. اما بیهوده بود و از پا هرچه تون میدویدند. ناگهان ارابه از جاده منحرف شد و نزدیک بود واژگون بشه که ملکه پرید ولی پاش بین چرخ و ارابه گیر کرد. ملکه در حالی که اطمینان داشت دیگه زنده نمیمونه و به دنیای مرده ها چشمش رو باز کرد. زن بسیار بزرگی روی ملکه خم شده بود. این زن پوستی از شیر به تن داشت. موهای بلندش را با پوست مار بسته بود. سر مار روی شونش قرار داشت. روی شونه دیگرش کیسه تیری قرار داشت و چماقی در دستش بود. ملکه زمزمه کرد بی خود نیست که میگن برای مردن باید شجاعت داشت چون دنیای مرگ اونقدر ترسناک نیست زن غولاسا این حرف رو شنید و گفت تو در دنیای مرگ نیستی هنوز زنده ای اما باید تمام جرعت خودتو به کار ببری من ساهره شیر هستم و تو باید بیای با من زندگی کنی ملکه التماس کرد بگذار او بره و گفت همسرم منو دوست داره او تو رو ثروتمند میکنه ساهره شیر گفت من به اندازه کافی ثروتمندم و نیازی به ثروت همسر تو ندارم اما از تنهایی حوصلم سر رفته و تو میتونی منو سرگرم کنی به شرطان که باهوش باشی اما سرزمین من جای تجملات نیست لباس و کلاه زیبات رو درار در مقابل چشمان از هدقه درامده ی ملکه ساهری شیر به ماده شیری تبدیل شد بعد هم ملکه رو پشت خودش سوار کرد و او رو شش هزار پله به امیقترین قسمت زمین برد زن گفت اینجا قلمرو منه همه جا تاریک بود و فقط نور کمی از دریاچه جیوه میتابید آب با تکان و جنبش قولها بالا آمد در قسمت بالا هم كلاقها جغدهای شوم و دیگر پرندگان بدیمن پرواز می کردند فریادهای ترسناک اونا فضا رو پر کرده بود و بوی بسیار بدی هم میمد ملکه در دوردست کوهی دید اما هیچ چیز برای راحتی او وجود نداشت درختها نه برگ داشتند نه میوه زمین هم پر بود از گزنه و خار پایین میان لجنزاری آب کسیفی در جریان بود در حالی که ملک خیلی ترسیده بود ساهره شیر بهش گفت که به جای آب عشق چشم افراد غمگین رو به اومیده سپس به شاه بلوتها و ریشه های خشک شده و سیبهای خاردار اشاره کرد و گفت این هم صبحانه، نهار و چای توه چیزهایی نیستن که بهش عادت داشته باشی اما من فقط همینا را رو دارم حالا بریم بلونه من. لانه ساحره شیر در اعماق غاری قرار داشت. روی زمین باید می خابیدند. هوا سرد بود و جایی راحتی نبود. ملکه میلرزید خیلی بدتر از دژ بود. در میان تعجب ملکه، ساحره شیر که به نظر وحشی می‌آمد، قدرت شفادهندگی خودش را آشکار کرد و زخم خطرناک ملکه را خوب کرد. اما ملکه فرصتی برای استراحت نداشت ساهره شیر گفت اینجا خدمتکار نداریم باید کارات خودت انجام بدی حالا قدرت کافی داری برای شروع میتونی کلبهی برای خودت بسازی و کار کنی بقیه تو اینجا خواهی بود رنگ از روی ملکه پرید و زد زیر گریه و گفت برای همه عمرم اگه فقط یه بار دیگه بتونم همسرم و ببینم میتونی منو همین الان بکشی بدبختی منو تموم کن ساهره شیر چماغ دستی سنگینش رو بلند کرد و گفت بس دیگه گریه نکن باید هرچی گفتم عمل کنی اگر نه وزت بتر از این میشه ملک وحشت زده با التماس گفت کاری نیست که بکنم تا بتونم دل تو رو به رحم بیارم ساحره گفت من کلوچه حشر دوست دارم اما حواستو جمع کنه دارم پر از حشرات بزرگ و گوشتالو و آبدار باشه. ملکه اعتراض کرد هشره اینجا نیست. به علاوه نور کافی نبود تا بتونه اونا رو شکار کنه. همچنین گفت من در تمام زندگیم حتی یک کلوچه نپختم. ساهره شیر گفت اون چه میخوام باید آماده بشه. این بار که تو رو میبینم باید یک کلوچه آماده کرده باشی. ملکه پاسخ نداد. حتی تلاشی هم برای گرفتن حشرات نکرد. هدفش چی بود؟ این کار غیر ممکن بود. با خود فکر میکرد که او رو میکشه. پس چه بهتر؟ اونجا اونقدر بد بود که مرگش مثل رهایی بود. اگه قرار نیست یه بار دیگه همسر عزیزش رو ببینه پس بهتره بمیره. یاد همسرش او رو ناامید میکرد. همسرش لابود فکر کرده او مرده. بدون اون همسرش چقدر از خودش پرسید اما برای چه مدتی؟ سرانجام او را از یاد می برد و با یکی دیگه ازدواج می کرد. این فکر او را بیشتر آزار میداد. فریاد کلاقی که او را از حال خودش بیرون آورد و به منقارش گرباقه ای داشت شنید هر لحظه ممکن بود قورباغه رو بخوره ملکه خیلی سریع چوبی برداشت و با خودش گفت من که نمیتونم به خودم کمک کنم اما میتونم اون قرباقه بیچاره رو نجات بدم سنگ رو به طرف کلاق پرد کرد تا شکارش رو رها کنه قرباقه بیهس روی زمین افتاد سپس اتفاق عجیبی رخ داد قرباقه با صدای شیرین و واضح شروع به صحبت کرد ای ملک یه زیبا از زمانی که اینجا اومدم اولین کسی هستی که با من دوست شده ملک پرسید چه قدرتی محبت صحبت کردن رو کی به تو داده؟ قرباغ پاسخ داد من پری هستم ملکه دوباره پرسید پس چرا به اینجای وحشتناک اومدی؟ قرباغ گفت کنجکاوی منو اینجا کشونده ملکه پرسید اینا کی هستند؟ از وقتی که اومدم کسی رو ندیدم قرباغ به حیولاهای داخل دریاچه جیوه اشاره کرد و گفت زمانی همه اینا ملکه ها و فرمان ستمگر بودند که باعث خونریزی و می شدند حالا به اینجا آورده شدند اما ماهیت اونا همینه و هیچیک بهتر یا بدتر نمیشند ملکه گفت نگه داشتن افراد خشن و بد باعث بهتر شدن رفتار اونا نمیشه اما حداقل یه روز آزاد خواهند شد ولی من باید همیشه اینجا بمونم کلاغ بالای سر اونا میچرخید پری توضیح داد که قدرتش در کلاه جادویی گل سرخش قرار داده. کلاهش را کنار مرداب جا گذاشته بود. کلاق هم اونو برداشته بود. گرباقه گفت اگه شما ای ملکه مهربان نبودی الان تا حالا خورده شده بودم. اونا رفتن تا کلاه گل سرخ را بیارن. گرباقه گفت بعضی وقتا نمیتونم از قدرتم استفاده کنم اما هرچی بتونم کمک میکنم تا زندگی سخت تو رو راحت کنم. ملکه با گریه گفت قرباقه عزیزم از تو خیلی ممنونم اما کسی نمیتونه کمکم کنه ساهری شیر وظیفه غیر ممکنی به من داده اگه کاری رو که گفته انجام ندم منو میکشه ملکه در مورد کلوچه یه صحبت کرد قرباقه گفت اینو به عهده من بگذار قرباقه شش هزار قرباقه دیگر رو هم صدا کرد سپس همه جا رو شکر ریخت به قرباقه دیگه هم یاد داد همین کار بکنند بعد اونها رو به جایی برد که ساحره شیر حشرات رو نگه می داشت و هرچند یه بار اونا رو آزاد می کرد تا زندانیهاش رو آزار بدن وقتی بوی شکر به حشرات رسید به سمت قرباقه ها اومدند قرباقه ها هم با زبون دراز و چسبناکشون اونا رو گرفتند و ملکه اونا رو جمع کرد و یه کلوچه درست کرد کاری خیلی کثیف و سختی بود؟ اما ملکه اونا انجام داد ساهری شیر پرسید چطور این کارو کردی؟ باید قدرتی پنهانی تو رو کمک کرده باشه ملکه خیلی مبهم جواب داد تو کلوچه میخواستی؟ منم اونو درست کردم دقیقهای صاهرهٔ شیر کاری به کارش نداشت از دریاچه گازهای سمی سم بلند میشد که هوا رو کثیف میکرد صاهرهٔ شیر میخواست ملکه این گازها رو تنفس کنه بنابراین او رو به لونهی خودش راه نداد ملکه تصمیم گرفت کلبه ای برای خودش بسازه ملکه دیگه به خودش فکر نمیکرد چون فهمید که بارداره های سبز درخت سروی رو برید قرباقه و دوستاش بهش کمک کردند و خیلی زود کلبه ساخته شد. قلبه راحت و دنج بود. ملکه از همه تشکر کرد و دراز کشید تا کمی استراحت کنه. اما این استراحت زیاد طول نکشید. قولهای دریاچه شروع به قررش کردند. اونا به خونه راحت ملکه حسادت می کردند و می او را از خونش بیرون کنند. قولها آنچنان سر و صدا می کردند که نزدیک بود ملکه از ترس دیوونه بشه. از گلبه فرار کرد و یکی از غولها که زمانی پادشاه ستمکاری بود وارد اون شد ملکه اعتراض کرد این عادلانه نیست غولها خندیدند و او را مسخره کردند به همین خاطر ملکه به ساحرهٔ شیر شکایت کرد ساهره هیچ کمکی نکرد فقط گفت بیخود حرف نزن وگرنه کتک میخوری ملکه جریان را برای غورباغه تعریف کرد قورباغه مثل انسان گریه می کرد هر دو با هم گریه کردند سرانجام گرباغه گفت به گولها اهمیت نده برای تو چیزی بهتر از یک کلبه میسازم سازم خونه ای مجلل و باشکوه دور از دریاچه که گولها نتونن تو رو اذیت کنن قورباغه با کمک دوستان گرباغش شاخه های درخت رو برید و خانه خیلی زود ساخته شد خونه ای زیبا با همه وسایل راحتی حتی برای خوابیدن تخت خواب کوچکی از آویشن هم درست کردهاند. ساهره شیر یه بار دیگه پرسید قدرت پنهانی تو چیه؟ هیچ حلفی اینجا رشد نمی کنه حتی گیاهان با دوام چیزی که من از اون بخبر باشم بار دیگه ملک تفره رفت و گفت شاید همین کودکیه که دارم حمل می کنم. امیدوارم سرنوشت او بهتر از من باشه ساهره شیر گفت نمیخوام درباره تو چیزی بشنوم. چند تا گل میخوام دست گلی از گلهای جذاب رنگارنگ ببینم آیا بچت کمک میکنه؟ ملکه فکر کرد گل؟ در این مکان؟ جایی که نور خورشید اصلا وجود نداره؟ ملکه هق هقه گریه میکرد و میگفت قرباقه <تصفيق> عزیز حتما میدونه که غیر ممکنه چه کار باید بکنم؟ قرباقه گفت دوست من خفاش میتونه به تو کمک کنه چون سریعتر از من پرواز میکنه کلاه گل سرخم رو بهش میدم تا بتونه مکان پنهانی گلهای جذاب و رنگا رو پیدا کنه برباقی مهربان خفاش رو صدا کرد بعد از چند ساعت خفاش با دست گلی لطیف از همه رنگ برگشت حالا ساهر شیر مطمئن شده بود که نیروهای پنهانی ملکر رو کمک میکنه اما چه کسی او رو کمک میکرد؟ اینجا قلمرو ساحره بود و نیروی او برتر بود ملکه باید همیشه زندانی او باشه با این حال ملکه همیشه به فکر فرار بود و به می میگفت که چقدر دلش برای همسرش تنگ شده قرباقه گفت با کلاه گل سرخم مشورت میکنم تا ببینم چی میگه اما اول باید دعا کنم قرباقه آتشی از کاه روشن کرد و نخود سبز شاخه های سر کوهی و گیاهان دیگر آتیش زد. پنج بار گور کرد. سپس کلمات الهام بخش مانند ریسمانی نقره‌ای به آرامی دورش رو گرفتند. گورباقی گفت سرنوشت قدرتمند و خوب شما مقرر می‌کنه که تو ای ملکه دنیای بالا همین پایین در قلمرو ساحرهٔ شیر بمانی و فرزندت رو به دنیا بیاری فرزند تو دختر خواهد بود دختری به خوبی آفرودیت الهه عشق حالا خوش باش فقط زمان شفادهند است کمی بعد از پیشگویی غرباقه فرزند ملکه به دنیا اومد دختری با زیبایی فوقلاده اما لذت ملکه خیلی کوتاه بود صاهرهٔ شیر شاهزاده تازه به دنیا آمده رو میخواست میگفت میخواد او رو بخوره این بار ملکه داد و بیداد راه انداخت با عصبانیت دعوایی کرد و میخواست که ساهره بگذار فرزندش رو نگه داره سرانجام ساهره شیر قبول کرد ملکه اسم دخترش رو مونت گذاشت ملکه همیشه با خودش فکر میکرد این دختر چه گنجیه چقدر فرمانروا او رو دوست خواهد داشت اما فرمانروا روا درباری دخترش چیزی نمیدونست. تا حالا باید منو فراموش کرده باشه و همسر دیگه ای گرفته باشه با گذشت زمان این فکرها مثل سوزنی داغ به قلبش فرو میرفتند حتی با گذشت سالها نمیتونست به این موضوع فکر نکنه غصه ملکه را خیلی ناراحت کرد طوری که قورباغه تصمیم گرفت به جستجوی فرمان روا بره و بهش بگه که ملکه زنده است و جاش را نشون بده قورباغه گفت من خیلی آهسته مسافرت می کنم اما دیر یا زود او رو پیدا می کنم ملکه خیلی خوشحال شد اما دوباره فکر کرد و گفت فرمان روا منو از اینجا نجات بده پس چرا جام رو بهش بگی؟ قرباقه گفت باید اون چی رو می تونیم انجام بدیم و بقیه رو به دست سرنوشت بسپاریم ملکه می ترسید که بدون مدرک فرمان روا حرف قرباقه رو باور نکنه اما فرمان رو خط او رو می شناخت بنابراین تصمیم گرفت نامهی بنویسه تا زنده بودنش رو ثابت کنه ملگه نه کاغذ داشت نه مرکب اما منصرف نشد به جای کاغذ از پارچه کهنه استفاده کرد و به جای مرکب از خون خودش ملکه با نراحتی رفتن قورباغه را نگاه می کرد و حالا باید بدون کمک دوست خیرخواهش از خودش و دخترش مراقبت می کرد مشتاقانه منتظر بازگشت قورباغه بود اما سالها گذشت ملکه به خوبی از دخترش مراقبت کرد اما می ترسید زندگی در قلم روی شیر دخترش را بداخلاق و کچ خرق بکنه شاهزاده رشد می کرد و بزرگ می شود. زیبایی بیش از حد او باعث شد قول ها شدیدن او را دوست داشته باشند و خودشون رو به پاش بندازند شاهصاد خانم ترسیده خود را به آغوش حمایت کننده ی مادرش مینداخت. با اینکه از اول زندگی با قول ها آشنا شده بود اما هنوز هم از اونا میترسید فریاد زد مادر اینجا وحشتناکه ما برای همیشه اینجا میمونیم ملکه هم خیلی ناامید و ناراحت بود اما به خاطر دخترش خودش رو نگه می داشت و گفت وضعیت ما خیلی بهتر از گذشت است حالا که ساهره شیر ما رو به شکار می بره می تونیم دنیای بالای سرمون رو ببینیم ساهره شیر دوست داشت خرگوش و موجودات دیگری رو بخوره که در قلمرو او وجود نداشت وقتی به شکل شیر در می آمد ملکه و دخترش رو روی پشتش سوار می کرد و اونا را به جنگل می برد و شکار میداد. اونا فقط اجازه داشتند سر و پای شکار رو بخورند اما به این ترتیب چند ساعتی میتونستند روشنای روز رو ببینند ملکه به دخترش میگفت همیشه غورباغه رو به خاطر داشته باش شاید فرمانروا رو پیدا کنه کسی چه میدونه چه اتفاقی میفته سالها گذشت ملکه دیگه از بازگشت غورباغه ناامید شده بود با این حال امید کم هم بهتر از هیچ بود فرمان روا. بر سر فرمان روا چه اومد؟ آیا در جنگ زنده موند؟ اگه زنده موند آیا همونطور که ملکه می ترسید دوباره ازدواج کرد؟ حوادثی که اتفاق افتاد اینها بود فرمان روا دشمنانش را رو از کشور بیرون کرد و با خوشحالی رفت که ملکه را از دش بیاره نگهبانان دش گفتند که اونها عرابه، اسبها و لباسهای خونی ملکه رو در جنگل پیدا کردند اما هیچ ردی از خود ملکه پیدا نکرده بود. فرمانروا فکر کرد که گرگ ها همسرش را خوردند. از ناراحتی تقریبا دیوونه شده بود. خودش را سرزنش میکرد که چرا او را به دژ مخفی فرستاده. ملکه نمیخواست بره و اگه به حرفش گوش کرده بود او هنوز زنده بود. فرمان فرمانروا با قلبی شکسته به شهر برگشت. اعلام کرد که در کشور صلح برقراره و سربازاش را از خدمت مرخص کرد. کشورهایی که بیشتر از این دشمن بودند با او دوست شدند و این پیش آمد را بهش تسلیت گفتند. مدت چهارده سال فرمانروا از مرگ ملکه ناراحت بود و سرتاسر سر کشور رو غم و ناراحتی گرفته بود. اطرافیان فرمانروا خواهش کردند دوباره ازدواج کنه چون کشور وارث میخواست. سرانجام فرمانروا پذیرفت که با شاهزادهی جوان و خوشقیافه ازدواج کنه. اگرچه به اندازه همسرش زیبا نبود به این ترتیب همه خودشون رو برای جشن عروسی آماده می کردند و مردم شاد بودند در همین وقت بود که قورباغه به سمت قصر فرمان به راه افتاد واقعا که قورباغه خیلی آهسته حرکت می کرد. یک سال و چهار روز طول کشید تا از شش هزار پله قلم رو شیر بالا بره یک سال هم طول کشید تا همه چیز رو برای دیدن فرمانروا آماده کنه چون میخواست طوری فرمانروا رو ببینه که مطمئن بشه او رو به قصر راه میدن قورباغه داده بود براش تخت روانی بسازند و حل از اونها اونو میکشیدند بزرگی اون به اندازه دو تا تخم مرغ بود بیرونش با پوست لاک‌پشت و داخلش با پوست مارمولک تزیین شده بود پنجاه قورباغه رو انتخاب کرده بود تا همراهش باشد اونا هم روی حل با زینهای زیبا نشسته بودند این زینها طوری تراهی شده بودند که قرباقه ها بتونن یه طرف زین بشینند سپس نگهبانان خود را از موشهایی انتخاب کرد که لباسهای مخصوصی به تن داشتند خودش هم سرخابی به گونه هاش زد تا همرنگ کلاه گل سرخش بشه گلهای کلاه خیلی قشنگ باز شده بودند همینطور که قورباغه و همراهانش به سمت قصر حرکت میکردند همه از گوشه و کنار برای دیدن اونا جمع شدند فرمان و عروس آیندش درباره اونا چیزهای شنیده بودند کنجکاوی اونا برانگیخته شده بود دیگه لازم نبود قورباغه تقاضای دیدار کنه چون او رو به قصر دعوت کردند قورباغه گفت فرمان روا برای شما خبری آوردم خبری که غم و شادی داره اما می بینم که نسبت به همسرتون بی وفا شدید و میخواد بار دیگه ازدواج کنید. با یادآوری همسرش فرمان روش شروع به گریه کرد و گفت: «همسرم فوت کرده اما خاطرش همیشه در قلبم زنده است فرمانروای با کشور نمی اونطور که میخواد زندگی کنه. اطرافیانم اصرار کردن که دوباره ازدواج کنم. منم هم همینطور که می بینید این شاهزاده جوان و زیبا رو انتخاب کردم. اور گفت: هشدار میدم که نباید با او ازدواج کنید همسر شما زنده است. دختری هم داره اما خبر بدی هم دارم. قباغ برای فرمانروا تعریف کرد که اونها زندانی ساحره شیر هستند و نامه ملکه را به او داد. فرمانروا نامه رو بوسید و همینطور گریه کرد و درباره همسر و دخترش صدها سؤال پرسید. همراهان عروس گفتند: شما قول دادید با شاهزاده ما ازدواج کنید. حالا نمیتونید قول خود را به خاطر حرف یک قرباغه که توفاله باطلاخ هاست بشکنید قورباغه گفت من از باطلاخ ها اومدم و میتونم در آب و روی زمین زندگی کنم اما توفاله نیستم قرباغه علامتی داد و ناگهان حل از اونها و موشها حتی پوست مارمولک ها عوض شدند همه گی قد بلند با عظمت و جذاب شدند با چشمانی که می درخشیدند هر کدام لباسی جواهر به تن داشتند و شنلی از مخمل که دنباله اونا کتوله ها در دست داشتند. صدای تبل و شیپور فضا رو پر کرد. آهنگ نظامی زدند. قرباقه های چمنزار تبدیل به پریهایی شدند که میتونستند تا سقف هم بپرند. ناگهان این پریهای قرباق شکل تبدیل به گل شدند. بنفشه، یاسمن، میخک، نرگس زرد و گل روز اما هنوز هم چکان میخوردند و میچرخیدند فرمان روان نمیتونست چون این چیزی رو باور کنه اما واقعیت داشت همه چیز جلوی چشماش اتفاق افتاده بود در کمال تعجب دید که گلها آب شدند و تبدیل به چشمی شدند آب به صورت آبشار به دریاچهی که قصر را دور میزد ریخت قایقهایی بسیار خوشرنگ و زیبا ظاهر شدند اونقدر زیبا بودند که شاهزاده و اطرافیانش سوار بر اونا شدند واقعا قبل از عروسی سرگرمی جالبی بود اما هنوز کاملا سوار قایقها نشده بودند که دریاچه و قایقها پرید شدند و همراهان قورباغه به شکل اول خود برگشتند فرمان پرسید بر سر عروس من چی اومد؟ قورباغه گفت ملکه همسر شماست فقط باید به او توجه کنید اگه او رو اینقدر دوست نداشتم دخالت نمی کردم اما او و دخترتون سزاوار چیزی بیشتر از این هستند که زندانی ساحره شیر باشد بستگی به شما داره که عجله کنید و اونها رو نجات بدید فرمان فرمانروا گفت اگه بطمئن می شدم که همسرم زنده است هیچ چیز نمی‌تونه مانع دیدن دوباره او بشه قورباغه خندید و گفت بعد از این همه عجایب که شاهد اون بودین حتما میتونید گفتم رو قبول کنید حالا این کاریه که باید انجام بدید. حکومت رو به دست کسانی که اعتماد دارید بسپرید و فوری راه بیافتید. این انگشتر رو بگیرید. با این انگشتر میتونید همسرتون رو ببینید و با ساحره شیر حرف بزنید. توجه نکنید که او ترسناکترین موجود روی زمینه. فرمانروا تصمیم گرفت تنها بره و گفت ملکه محبوب منه، من باید که تنهایی او را پیدا کنم. قبل از حرکت هیه های ارزشمندی به غرواغه داد، غرواغه هشدار داد، با خطرات ترسناکی مواجه میشید اما اونقدر آرزو دارید همسرتون رو به دست بیارید که احساس میکنم موفق میشید. کلماتش قوت قلبی برای فرمان روا بود به این ترتیب به دنبال همسرش رفت. از انگشتر خواست که راه و نشونش بده. انگشتر او رو به جنگل نزدیک دژ راهنمایی کرد فرمان روا همه جا رو جستجو کرد اما نتونست در غار ساهر شیر رو پیدا کنه تا اینکه یه روز که زیر سایه درخت استراحت می کرد مادشیری ظاهر شد پشت شیر ملک سوار بود به همراهش دختر زیبایی که به طور حتم دخترش بود قلب فرمان روا به هیجان اومد با اینکه زمان زیادی گذشته بود اما هنوز به همسرش خیلی علاقه داشت با خودش گفت اگه الان برگردم هزاران بار زودتر از این میمیرم که با خطر روبرو بشم انگشتر با قدرت جادویی منو به طرف ملکه راهنمایی کن انگشتر شش هزار پله رو نشونش داد و او رو به قلمرو دورافتاده ساحره شیر برد فرمان روان نمیدونست که ساهره شیر اومدن او رو پیشگویی کرده بود. ساهره شیر میتونست روز و زمان دقیق ورودش رو بگه اما قدرت جلوگیری از اون رو نداشت. فقط میتونست با تمام قدرتش با او بجنگه. ساهره شیر با خود فکر کرد بعضی کارها رو باید اول از همه انجام بده. روی دریاچه جیوه قصری از بلور ساخت و ملکی و شاهزاده خانم رو در اون زندانی کرد. بعد غولها را صدا کرد و بهشون هشدار داد اگه کمکم نکنید فرمانروا رو بیرون کنم عزیز شما را از اینجا میبره و برای همیشه شما شاهزاده خانم زیبای خودتون رو از دست میدید غولها سرعت دستورشو انجام دادند و قصر بلوری رو محاصره کردند غولهایی که سبکتر بودند خودشون از سقف و دیوار آویزون کردند اما فرمانروا اول به طرف دریاچه نرفت انگشتر او رو به سمت غار ساهره شیر برد ماده شیر منتظرش بود و با نزدیک شدن فرمانروا غرش کرد و پرید فرمانروا اونقدر سریع شمشیرش رو کشید که ساهره شیر متوجه نشد پنجش را بلند کرد که او رو بندازه اما فرمانروا با شمشیر پنجش رو تا مچ برید ساهره شیر ناله کرد و افتاد فرمانروا هم خودش را رو روی شیر انداخت و سااهره شیر میدونست که با یه حرکت اشتباه فرمان رو او رو میکشه. سعی کرد عصبانیت خودشو کنترل کنه و خیلی آروم سوال کرد از من چی میخوای؟ چه کار میخوای انجام بدم؟ فرمان را هم سعی کرد عصبانیت خودش خودشو کنترل کنه اگه ساهرهیه شیر رو میکشت نمیتونست بفهمه همسرش رو کجا پرهان کرده. بنابراین میدونی چی میخوام. میخوام تو رو به خاطر آنچه که بر سر همسرم هم آوردی تنبیه کنم. اما در حال حاضر همسرم را به من بده و یعنی تو رو با همین دستام خفه میکنم. کنم شیر به قصر بلوری اشاره کرد و با کمک انگشتر فرمان روا همسر و دخترش رو دید فرمان روا صدا کرد و اونا صداش رو شنیدند بسیار خوشحال شدند اما خیلی زود غمگین شدند وقتی که دیدند برای رسیدن به اونا باید از دریاچه جیوه بگذره و غولهای وحشتناک را از بین ببره همینطور که فرما روا داشت فکر میکرد که چه کار باید بکنه ساهره شیر از فرصت استفاده کرد و ناپدید شد. فرمان خودش رو سرزنش میکرد. میتونست ازش کمک بگیره اما دیگه خیلی دیر شده بود. فرمان رابا کنار دریاچه رفت. وقتی دید قصر بلوری به طرف او شناوره قلبش از جا کنده شد. میخواست روی اون بپره که با سرعت وحشت داکی شروع به حرکت کرد. بارها و بارها دریاچه رو دور زد و بارها و بارها قصر تا نزدیک اومد اما با سرعت زیادی دوباره دور شد ملکه می ترسید همسرش اونا رو رها کنه بنابراین تاکید کرد سرورم محبت می تونه حتی ساهری شیر رو هم شکست بده ملکه و دخترش دستاشون رو به سمت او دراز کرد. به این ترتیب فرمان روی قوت گرفت و پاسخ داد اگر شما رو در چنین جای وحشتناکی رها کنم زودتر میمیرم فرمانروا روا همه صبر و قدرتش رو لازم داشت سه سال گذشت سه سال خوابیدن روی زمین پر از تیغ و خار سه سال خوردن میوه های تلخ تازه مقاومت کردن در برابر حمله گول هم بود فرمانروا نمیدونست که ملکه چطور تونسته این همه مدت در چنین جایی سر کنه خسته شده بود و بارها وصفصه شده بود خودش رو به دریاچه بزنه. البته اگه میدونست این کار زندگی رو برای همسر و دخترش راحت تر می کنه، حتما این کار رو می کرد. یک روز که مثل همیشه دور دریاچه میچرخید تا شاید بتونه روی قصر بپره اجده بزرگ بزرگ وحشتناک دید که به طرف او می اومد. گفت پیشنهادی دارم برات. فرما روا پرسید چه جور پیشنهادی؟ اجدها گفت اینجا لغمه چرب و نرمی هست که دوست دارم اونو بخورم اگه به قصر اقتدار حکومت و لباس پادشاهی همچنین اگه به جان همسر و دخترت قسم بخوری که هر موقع خواستم اونو به من بدی در عوض تو رو به قصر بلوری میبرم و همسر و دخترتو نجات میدم فرمانروا درنگ نکرد و فوری گفت قسم میخورم به تو و دوستانت لقمهی خوشمزهای رو که دوست دارید بدم و خدمتگذار شما باشم اژدها گفت که اگه قول خودش رو بشکنه به بدبختی دچار میشه اما تنها فکر فرما روا این بود که ملکه رو نجات بده به همین خاطر دوباره قولش رو تکرار کرد اژدها گفت پشت من سوار شو اونا از روی دریاچه پرواز کردند و به طرف قصر بلوری رفتند ناگهان غول ها حمله کردند و از دریاچه ابرهایی از گوگرد بلند شد ها با چنگ و دندون و زبانه آتشی که از دهانش خارج میشد با اونا میجنگید فرمانروا هم با شجاعت کنارش میجنگید ملکی ساکت نموند او هم از دیوار پایین اومد و با یک تکه شیشه به دلیری بقیه جنگید سرانجام مبارزه تمام شد ملکه و فرمانروا همدیگر را در آغوش گرفتند و با این کار آسمان رعد و برقی زد و به دریاچه خورد و اونو خشک کرد غولها و حتی اجده ها ناپدید شدند اونچه که اتفاق افتاد باور کردنی نبود فرمانروا ملکه و شاهزاده خودشون رو در اتاق غذاخوری در قصر سلطنتی دیدند که در پشت میز غذاخوری نشستند فرمانروا گفت الان تو خونه خودمون هستیم لحظه بسیار خوبی بود ولی نمیدونست که به زودی چه اتفاقاتی میافته شاهزاده ظاهر شدن جادویی فرمانروا و ملکه و شاهزاده اطرافیان فرمانروا و مردم رو متعجب کرد. غیر از این همه از زیبایی شاهزاده خانم لباس زیبا و زربفت خیره کننده او در شگفت بودند. خود شاهزده خانمم متعجب شده بود. نمیدونست لباس های و کثیفش چطور به این لباس زیبا تبدیل شدند. شاهزاده در قصر خوشحال و راحت بود و از اینکه میتونست هر روز طلوع خورشید و در شب ماه و ستارگان رو ببینه خیلی لذت میبرد. آوازه زیبایی و باهوشی او همه جا میپیچید. و خیلی زود شاهزاده ها از اینجا و اونجا برای خواستگاریش اومدند شاهزاده ها در مسابقات شمشیر بازی و سوارکاری شرکت می‌کردند و مهارت‌های خود را در فنون نظامی نشون می‌دادند تا او را تحت تاثیر قرار بدند اونا برای ستایش زیبایی شاهزاده آواز می‌خواندند و به افتخارش شعر می‌سرودند اما شاهزاده در قلمروی ساهری شیر یاد گرفته بود میوهی که ظاهرش انسان رو به خوردن بسپسه بس میکنه ممکن ممکنه سمی باشه او یاد گرفته بود که درون هر چیز را با چشم بسیرت ببینه حالا با یه نگاه کوتاه میتونست بگه که همه این شاهزاده ها احمق، تمعکار و به درد نخور بودند فرمان روا گفت دخترم، همسری رو که دوست داری انتخاب کن تنها آرزوی من خوشبختی توئه بین خواستگارای شاهزاده خانم یه شاهزاده موفی هم بود او جوانی جذاب بود و خیلی خوب شمشیر میزد. شاهزاده متوجه شد که این جوان محبت حقیقی داره بنابراین او رو برای همسری انتخاب کرد شاهزاده موفی باید به کشورش برمیگشت تا برای جشن عروسی آماده بشه اما شاهزاده خانم خواهش کرد بمونه چون میگفت احساس میکنم اگه بری دیگه تو رو نمیبینم شهزاد موفی دلش نمیخواست بره به همین خاطر ملکه عکسی از دخترش داد تا همراهش باشه و به او گفت که جشن سادهی برگزار کنه تا زود برگرده شاهزاده موفی با خوشحالی پذیرفت شاهزاده خانم هم با اطمینان از اینکه او به زودی برمیگرده وقت خودش رو به کتاب خوندن و یاد گرفتن موسیقی میگذروند اونقدر مشتاق یادگیری بود که خیلی زود حتی از معلم ها هم بیشتر میدونست یه روز شاهزاده خانم در اتاق مادرش بود که غولی کنار در قصر ایستاد و تقاضا کرد فرمانده او رو ببینه. غول گفت: جناب فرمانروا، پیغامی از طرف اربابم دارم. فرمانروا گفت: ارباب تو کیه؟ کار تو بگو و برو. غول گفت: فرمانروا، لزومی نداره اینطور صحبت کنین؟ ارباب من اجده که ملکه و دخترت رو نجات داده فرمانروا دستش رو دراز کرده گفت بنابراین خوش اومدی چه کار میتونم برات بکنم قول پاسخ داد ارباب غذای خوشمزه ای رو که قول دادی میخواد فرمانروا گفت: گفت هرچه بخواد بهش میدم قول گفت فرمان روا چیزی که او میخواد غذای خوشمزه و کمیابیه خوشمزه ترین غذا در تمام دنیا البته اگر شما خواستش رو برآورده کنید فرمان روان نمی دونست موضوع چیه بنابراین نپرسید و گفت می ترسم نتونم بدم غول گفت چرا؟ این غذا چه چیزی غیر از شاهزاده خانم دختر خودت می باشه؟ هیچ چیز خوشمزه تر از نیست. و عربا به من تصمیم گرفته از دخترت یک غذای خوشمزه درست کنه و اونو برای شام بخوره فرمانروا از ترس رنگ از صورتش پرید و به ملکه و دخترش خواسته اجده ها رو گفت ملکه جیغی زد که قلب فرمانروا لرزید و فوری دخترش رو در آغوش گرفت گفت قبل از اون که دخترم رو به اژدها بدیم میمیرم سلطنت، قصر، جواهر، سکه های طلا هر چی رو که داریم بهش بده. فرمانروا گریه میکرد و میگفت اما من قول دادم وقتی فرمانروای قول میده نمیتونه اونو بشکنه ملکه از ناراحتی می و می گفت تو جور پدری هستی؟ می خوای تو تبدیل به یه خوراک خوشمزه کنی؟ اما قولی رو که به یه اجده دادی نشکنی؟ قول رو پیش من بیار از او خواهش می کنم التماس من دل او رو نرم میکنه. کنه رو به قول کرد و فریاد زد هر چی می خوای بگیر اما از دخترم بگذر قول گفت این من نیستم که باید تصمیم بگیرم حقیقت اینه که ارباب من اشتهای خاصی داره و وقتی تصمیم بگیره کسی رو بخوره هیچ چیز در بهشت یا زمین نمیتونه جاشو بگیره در زمین خانم ملکه هشدار میدم که بهتره چیزی که ارباب خواسته بهش بدید چون برای شما و فرمان و سلطنت هیچ چیز بدتر از این نیست که وقت شام فرا برسه ملکه قش کرد و افتاد شاهزاده خانم هم نزدیک بود از حال بره اما سعی کرد به مادرش کمک کنه. سه روز گذشت. اما فرمانروا نمیتونست خودش رو راضی کنه که دخترش رو بده. غول بی‌حوصله شد و اونا رو تهدید کرد. اما فرمانروا و ملکه معتقد بودند بدترین کاری که اژدها میتونه بکنه کشتن اوناست. اونا است. اونا میگفتن اگه اژدها دختر ما رو تبدیل به غذا کنه به هر حال زندگی ما هم تموم میشه. خیلی زود غول پیام دیگه‌ای از طرف اژدها آورد. اول گفت راستش اربابم حاضر از خوردن این لقمه خوشمزه صرف نظر کنه اما در عوض یه چیزی خواسته به جای اینکه دختر شما رو غذا کنه و بخوره از جانش میگذره و میخواد با برادر زادش که شاهزاده است ازدواج کنه او نه تنها شاهزاده است بلکه جوان و زیبا نیز هست او دختر شما میتونن ازدواج کنن و همیشه در شادی زندگی کنند، با گفتن این حرف ملکه و فرمانروا کمی خوشحال شدند و پیام اجده را رو به دخترشون رسوندند. اما اجده ها در قلم روی سخت و پرمشقت ساهری شیر بزرگ شده بود قلبش هنوز عاشق بود اما با تحمل اون همه سختی ها روحش قوی شده بود و میتونست خودش تصمیم بگیره شاهزاده گفت شاهزاده موفی در قلب من جا داره قول دادم که باهاش ازدواج کنم ولی حالا نباید به خاطر نجات زندگی خودم پیش او برم باید به اون چه گفته عمل کنم بنابراین کشور و شما و پدر و مادر عزیزم در خطر نخواهید بود فرمانروا رو خواهش کرد که تصمیمش رو عوض کنه و گفت دخترم، دختر محبوب و عزیزم جون تو به خاطر نجات ما به خطر ننداز ملکه خیلی ناآرام بود و بار دیگه سعی کرد تصمیم دخترش رو عوض کنه اما شاهزاده از تصمیم خود برنگشت و سرانجام پدر و مادرش مجبور شدن قبول کنند غول گفت اما نه قبل از موعد شعار من اینه وقتی نمیشه مانع چیزی شد بهتر اونو قبول کرد حالا شاهزاده باید به قله کوه بره اربابم میاد و او رو میبره ملکه و فرمانروا روا دستور دادند که همه مقامات حضور داشته باشند مراسم مذهبی قربانی کاملا انجام شد 400 دختر جوان شاهزاده خانم را همراهی می کردند همه اونا لباس سفید بلند با شنل های سبز رنگ به داشتند شاهزاده خانم هم لباسی از گل همیشه بهار و یاسمن به تن داشت موهایش روی شانههایش ریخته و ربانی به سرش بسته بود با تخت روانی از مخمل سیاه او را بالا میبردند. در باز بود تا همه شاهد زیبایی او باشند فرمانروا و ملکه پشت سر دخترشون حرکت میکردند. غول از جلو میرفت. اثر تا با کاملا مسلح بود همه ی کسانی که در این مراسم شرکت داشتند لباس سیاه به تن داشتند و رنگ پریده به صف ایستاده بودند صدای شیون فضا رو پر کرده بود اما به نظر می رسید شهزاد خانم در برابر سرنوشتش بی تفاوته فقط در برابر گریه و زاری و نراحتی مادرش ناراحت می شد. به قله کوه رسیدند غول دستور داد همه اونجا رو ترک کنند دستور غول اجرا شد و همه بالای تپهی رفتند تا از اونجا بتونن شاهزاده خانم رو ببینند شاهزاده تنها و بی حرکت بود مثل اینکه یخ زده بود حتی وقتی اجده در آسمان پدیدار شد، تکون نخورد. چقدر بد قیافه و وحشتناک بود. بدنش پوشیده بود از فلزهای بزرگ آبی و زبانه های سمی و آتشین. دوم آویزونش پنجاه تا حلقه داشت. پنجه به بزرگی آسیاب های بادی بودند که هوا رو میشکافتند. روی آرواره سه ردیف دندون به بلندی دندون های فیل بود. شش تا بال داشت. اما اونقدر بزرگ بود که خیلی آهسته حرکت میکرد. ملکه با نزدیک شدن اجده با ترس او رو نگاه می اگه غر باغه میذاشت در قلمرو سااهره شیر بمیره الان دیگه شاهد کشته شدن دخترش نبود. فریاد زد: دوست عزیز چرا منو نجات دادی؟ که حالا ترکم کنی؟ اما غرباغه ملکه را ترک نکرده بود و او را رها نکرده بود؟ قرباقه سوار برق و به سرعت رفته بود تا به شاهزاده موفی همه چیز رو بگه. قرباقه دید شاهزاده موفی با عکس نامزدش صحبت میکنه. فریاد زد این کار نه کمکی به تو میکنه نه به شاهزاده. او در خطره باید او رو نجات بدی منم کمکت میکنم. قرباقه به برگی فوت کرد وقتی نفسش به اون خورد تبدیل شد به اسبی سبز و قوی با دوازده سموس سر، که آتش و های آتش آتشین بیرون میداد. سپس شمشیری به او داد. به بلندی هشت فوت و به سبکی پر. غلافی جادویی داشت که باعث می‌شد بتونه اونو سالم حمل کنه. قورباغه گفت: حالا اینو بپوش. یک کت به از الماس به محکمی یک صخره و به نرمی پوست بدن که به راحتی به هر جهت که می‌خواد حرکت کنه. شاهزاده سوار بر اسب شد و قرباقی گفت که اسب او را پیش نامزدش میبره همچنین افسود فراموش نکن بهش بگی که منم در نجات او کمک کردم موفی گفت حتماً حتماً همیشه خدمتگذار وفادار تو خواهم بود اسب دوازده سومی چنان جهشی کرد که همزمان با اجده به قله کوه رسید ناگهان اسب حمله کرد از دهانش آتش و گلوله‌های آتشین خارج میشدند دوازده گلوله وارد گلوی اجده ها شد زره فلسیش فرو رفته بود و یکی از گلوله ها هم به چشمش خورده بود اجدهها فریاد می زد و با پنجه های تیزش خودش را به شاهزاده می زد. اما فقط کت الماس شاهزاده را خراش می داد. شاهزاده خیلی سریع مثل برق شمشیرش رو کشید هر دو می که ممکنه کشته بشن دختر فرمانروا که تا اون موقع به خاطر خودش نترسیده بود. وقتی که دید اجدهها میخواد دوباره به شاهزاده موفی حمله کنه از ترس لرزید. اجدهها شاهزاده رو زمین زد. اما او برخاست و سوار اسب شد. دوباره افتاد و دوباره بلند شد. پنج بار تکرار شد. اجدهها از درد و خشم میلرزید و رفت تا شاهزاده رو بکشه. رو در رو مبارزه میکردند. کردندند. پنج ها دندان و بالها زمین رو خراش میدادند. و زمین خیس بود از خون سبز اسب شاهزاده و خون قرمز اژدهها اول اژدهها از پا دراومد روی زمین افتاد و شاهزاده ضربه آخر را وارد کرد اما خیلی عجیب بود خون نیومد از میان زخم شاهزادهای جوان و زیبا خارج شد با لباسی بسیار شیک به رنگ آبی و مخمل طلایی که با مروارید تزیین شده بود روی سرش کلاهی با پرهای سفید بود به سمت شاهزاده موفی که شگفت زده بود دوید و او را در آغوش گرفت فریاد زد چطور میتونم جبران کنم تو منو از تلسم ساهره شیر نجات دادی؟ شانزده سال بود که منو به شکل عجده درآورده بود بدترین زندانی که کسی میتونه تحمل کنه او بود که به من دستور داد تا شهزاد خانم رو بگیرم و در برابر قدرت او من فقط باید اطاعت میکردم شاهزاده گفت هر دوی ما باید از قدرت پنهانی تشکر کنیم که ما رو نجات داد سپس موفی برای نامزدش تعریف کرد که چطور قرباقه او را از خطر آگاه کرده ملکه گفت نگاه کنید در آسمان اقابی پرواز می کرد که پاهایش زنگهای طلایی داشت و به هنگام پرواز صدا می دادند. پشت اقاب قورباغه سوار بود با کلاهی از گلهای سرخ که به زیبایی باز شده بودند. ملکه با خوشحالی به سمت قورباغه دوید تا خوش آمد بگه. به محض اون که دستش را گرفت قورباغه تبدیل به ملکه ای بسیار زیبا و باوقار شد. وقتی قرباغ شروع به صحبت کرد همه ساکت شدند. گفت، من وارد سرزمینی شدم که شاهزادهش ترجیح داد با مرگ روبرو بشه و به قلبش خیانت نکنه همچنین به سرزمین شهزادهی که به دلاوری و صداقت نامزدشه گرباقه تاجی از گل بر سر اونا گذاشت، بعد با چوب جادویش سه بار به اسقانهای عجده زد استخانها حرکت کردند و تبدیل شدند به وسایل شادی تا این موقعیت زیبا رو جشن بگیرند دو شاهزاده به طرف شهر حرکت کردند روز بعد هم با هم ازدواج کردند و مردم سراسر سر کشور از این پیوند شادمان شدند